اما خانم آقایون دختر خانم آقا پسرها چند روز پیش سخنانی از دکتر حسن عباسی به دستمون رسید در مورد خطر بزرگی که جامعه رو تهدید میکنه و عملا ایشون یه دژمن دیگر رو هم کشف کردن و به کلکسیون دژمنان نظام اضافه کردن این خطر و دژمن جدید چیزی نیست یا کسی نیست به جز روانشناس ها. گوش کنین اول اینجاست که الان شما یه مشکل عادی پیدا می‌کنی نمیدونی چطوری درمانش کنی نمیری پیش یه روحانی صاحب تخصص در علم اخلاق که چهارتا تا حدیث میدونه 5 تا آیه و تفسیر و روایت میدونه 6 تا نکته اخلاقی میدونه پنجتا تا مطلب از 4 تا آدم شنیده که اینا چجوری به اعتقادی خودشونو بالا برده بودن و بعد معنوی داشتن مردم حتی متدینین امروز بلند میشن میرن پیش روانشناس روانشناسی که درس کیو خونده صد نفر رو میشناسه که این صد نفر یکی از یکی کثیفتر و آلوده زندگی روانشناسا رو بخونید فروید، کارن هورنای، دختر فروید اریک اریکسون جان پیاجه ابراهام مازلو، راجرز بقیه از تاولف به این طرف بله یعنی چکیده فرمایشه ایشون اینه که مردم چرا بجانی که برن پیش روانشناس به روحانیت مراجعه نمیکنن و ظاهراً روحانیت حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ و نمیدونم. همه اینا کمش بوده خب میخواد در حوضه علمی هم ورود بفرمایند دیگه و... به به به چه حلال زدان بودن سلام علیکم اجاغا سلام و علیکم و روان شناسی سلام در خدمت هم نگه. در خدمت چی هستی اجاغا همین که دوست بزرگوار و دانشمند فرزانه موعلان دگه شما هر مشکلی دارید از نظر روحی و روانی روحانیت می‌تونه آن را برای شما حل بکنه تفضل. دو... ها پس فالگوش وای صد بودین جلو در آجی. حالا ما مهمیش فالگوش باید میشد. لط می‌کنی، لط می‌کنی. خب درباره‌ی حرفای آقای ابباسي گفتن مردم بعد برن پیش روحانیت برای مشکلات روانیشون نظرتون چیه هجی؟ پیشون کاملاً درست گفته نگاه این مساله شد در شد از مسلماته. کوباش. خب هچا اصلا شما فرض کن، حالا که اومدی من کسی هستم که مشکل دارم، نیاز به مشاوره دارم، وادام خدمت متشو شما چی جوری میخوای مشکل منو حل کنی خب هر چیز مراحل خودش رو دارد. دیگه اول اول ویزیته که باید یاد پرداخت بشه مو کارت پرداخت می‌کنی یا نقدی پرداخت هاجی و حق ویزی بله چیه دیگه حالا الان من بخوام مثلا با کارت پرداخت کنم شما میخواید چیکار کنی چه بله چی جوری مخ... بفرمایید هم دستگاه کارتخوان هاج اقا حالا باهشه خیلی قال بعدن بله حساب می‌کنیم الان که داریم مثال می‌زنیم هاجی جان الان اصلا مثلا ندارم که مگر روحانیت بیکاره بیایه به تو مشاوره مجانی بده بله من زحمت کشیده ایم با... درش خونده ایم استحلاک داشته ایم با کارت یا نقدی خدا ما مریض داریم باید برایم بیا حاجی جان بیا به بفید شده اصلا اصنی... این ها نقدی میده بله بله من نقدی میده بله بله می بفرم این ببی بله بله. بله کافیه بیا اینو خدمت شما بفر دیگه همون کافیه دیگه بده. بیچاره پل نداری که آجی این چه طرز صحبت کردنه آخه بله دیگه نحوه صحبت هم بستگه به میزان ویزیت داره دیگه شما همین مبلغ رو دوباره آور بکن ببین بنده چقدر مهربانتر میشم نه خیلی متشکرم هم. ممنونم همین بله به قدرت تو ما باید بریم کار داریم دیدم عرض میکنم حاجی من راستش یه ب... مدت خیلی عصبی و پرخاشگر شدم زود از کوره در میرم دعوا میکنم نمیدونم چه مشوده چیکار باید بکنم بله مشکلات رو روحانیت در سه شوت برات حل میکنه جدی برات یک ذکر مخصوص مینویشم بشه. هر وقت عصبی شدی 3 بار زیر لبون رو میگی تمامه دیگه اون کاغذ و قلم را بده ببنم. بفن بفن بعد اون بفن قلم، هم این هم قلم حاله حاله حاله این چیه این چیه داری داریم اینیمیزیم را... بذ ببینم قل قل دالا الله چی چی چی هاجی من نمیتونم بخونم بلد. این چیه اون نخوان اون را این نسخه رو مخصوص خودت نوشتم دیگر این ذکر را بخونه ساید افکت ممکنه براش ایجاد بشه هاجی وارد شد یا ناگولا ساید افکت از کجا یاد گرفتی این نصف المومنن برای ما کلاس زبان گذاشته دیگه شکر خدا به کارمون هم میاد آفرین آفرین با. نصفی باشه درحال این بدخطال بعدا برام بخونید لطفا ما چطور دستخطتونم خیلی دو شده دیگه ها بله ما هم طور که استاد ابباسی گفتن به نوع دکتر مومنات وانگر شد مومنین هم بله هستیم نمی هاجی من یه مشکل دیگه دارم اینم بگم مشکلمو چقدر مشکل داره تو ملعون بگو زود ببینم بگو دیگه به هر حال راستش هاجی من حس میکنم تو محیط کارم ارضا نمisham خیلی بله. اون انرژی رو که میخوام نمیگیرم اینو بعد... بله غلط فهمید مروضا نمیشه اجازه بده من این مشکلت رو روانیت درست شد برای شما حل میکنن بیا حاجی چیه؟ آلبوم رو نگاه بکن آلبوم برای کدومشون رو میخوی این ای خانوم ها چیه حاجی؟ ای. این عزیزون برای اردانه شدن در محیط کار کار دارند دیگه اینا نه با مریه کم و غیر اندل مطالبه هستن خودمون هم تضمین میکنیم صد درصد. حاجی من منظورم یه چیز بله؟ دیگه بوده محسن. من اصلا... منظور شما رو ما میفهمیم ملعون حرف نباشه. بله بله. یک بله. سیغه پنج ساعته برای شما میخوانیم با مهری کم دردسر هم آه. نداره دیگه حاجی حرف نمیشه توصیه سیه من نمیفهمم واقعا نکمت. چی... وگر اگر این چیزها میفهمیدی که می اومده جای بنده مینشستی دیگه معلومه که نمیفهمی. یکی از دلایل شادابی روح و جسم روحانیت عمل به همین مسائل ساده. بله بله <تصفيق> خیلی متشکرم مرسی حاج جان واقعا هم که روحانیت همیشه شاداب هستن بزنن عبادن. به دفتر <متش> زیر 120 سالم عمر نمی‌کنن البته <متش> من ترجیح میدم برم پیش همون رواچنازای بقول آقای دکتر عباسی فاسد و اینا تا که من به این توصیه شما عمل کنم مرسی هاجا مرسی خیلی لطف کردین موبایلتون هم زنگ بزنن جواب بدین بله بله واقعا مشکل اورجنسدوره هاجا اون فروشون جدی میفرمایید ماشین بفرست برای ما بریم به بالنشتاه. بله بله آلبوم ها همراه ما هست. بله زود بفرستید ها. این همه جا میبره. آقا آن عزیز ما، ما باید برای بفرمایید دیگه حاجی ما کار داریم. لازم رو تامین بکنم. تفضل. بل تفضل دیگه. بفرم بله بفرمایید بفرمایید. خیلی خوش اومدین حاجی. سلام برسونید خدمت همون حاجاقا آن فروشان. نه خدا نگهدار.